بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الله جاده على دائم اجمعين اللهم اغفر لنا جميعا ومغفرين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمین عرض شد واجبه شرح عبارات مرحوم شیخ در کتاب عده در این که پیش پیش هر در صفحه, صفحه 131 و 132 این تصلی رو که ایشون داره از صفحه 136 26 شروع میشه با عنوان مذهب و مسلک در حجیه به بعد که اون رو میگه اده از اشکالات میکنه تا به اینکه این اشکالش در صفحه 131 این است که اده از این افرادی که این رواهات نهاره کردن منحرفن مثل قلات قائل به تناسخ و قیبه تعملونه به عادل اخبار رو نهلم انا رواهات ها اکثر هم اما رواهار رو رب از اخبار جبر جبر الان شاید سابقا در الان پیش شما زیاد نیست و تشبیح و غیر که من در غلوب و تناسخ این من خواستم برای توضیح بدم که احتمالا احتمالا علم و نظر مرحوم شیخ یا نظر اون مستشکر به مقداری از های اصحاب ما باشه که ما به اصطلاح اونها رو به خط قلوب نزبه میدیم اده از میرازهای منصوب به خط قلوب مثل الانشم هست اون ها الانم وجود داره مثل کتاب و سراط به مفضل ابن عمر جغتی. کتاب الهفت الهفت ولی از الله یا الهفت, الهفت شریف حدود 7-8 تا کتاب افرادن چاپ کردن و ارز کردن این کتاب ها و الهفتش پیش اصحاب ما بوده بقیه نبوده در میراث‌های های مثل اسماییی ها و های شما اونجا ها پیدا میشه در میراث‌های های ما نیست این کتاب توی این کتاب ها توی این کتاب هایی که مثل کتاب الهفت هم قول به تناسخ هست هم قول به بلو. صاحب جبیمه با سماوات را داریم کولا تناسخ هم هست توی کتب منسوب به مفزع که از راه ما نه مثل توحید مثل اهل الهیجه از راه اسلام اومده ولی اصلی از ما هست توی کتاب‌های مفزع که ما داریم غیر از روایات تو کتاب‌های مفزع مثل توحید و اهل الهیجه ما داریم افکار قلوب و تناسخ نیست اما توی کتاب‌هایی که غیر ما نقل جزوی آفیز داره اسمش کتاب بودشن به نام سرات یا کتاب هفت این در کتاب سرات خیلی عکیب نو شده روی اصطلاح هم نرمون کنن به جای آشم که پس کار از خون نست تبدیل به چی میشه تبدیل به سنگ میشه تبدیل به حیوان میشه, انسان میشه. خشرات میشه حیوانات موزید میشه ایشان ما اصطلاح ها نران پس کار میگن. ایشون نست بگ و الگولو به و مسوخیه و رسوخیه عجیبه خیلی عجیبه شدیه اصطلاح هم هست حالا چطور این اصطلاح چی جوری کتابی مفضل شده چون اینمه که علیه مستان این حرفی به کفر رو نگرد حالا اصلا چطور بازی کتاب شده این اصطلاحات رسوخیت و خسوخیت و مسوخیت اونم برای من هنوز زوشن نیست این نظر مربونه شیخ دیگه اینه این, این یک اشکال که الان هم ادعای می کنند مثلا یه شما میگیم این یک حدیثی مثلا از زوار بنو میسازن صحیح صحیح شما میگه این حدیث مثلا نمیشه قبولش کرد اصحاب قبول نکردن مثلا احتمال مثلا تغیه داره یا یا مثلا باطل مضمونش باطل وقتی میگن خب همین حدیثی که الان شما میگیم ما قبول نداریم عین اینو تو فهدها حدیث این عین حدیثا قبول میکنه خب اینم مثلا چطور این حجت نیست اونا یه که الان هم در این نورش های معاصلی من برزیخت رو این شبیه این اشکالیسی در هزار سال قبل شیخ مفرح بشن و در اینجا ایشان ایناها دستبندی میکنه اولم یه مقلده مرد از مقلده کسانی هستن که احل علم نیستن ما داریم یه ایتونستن بقال بوده خلال بوده ما این شغل خلال یعنی سرکه یا میفروشه یا درسته حلال یعنی ارده روغن کنجز روغن سمسن رو میگن حل باهه قوی و لام مثل خله اون نقطه داره نقطه نداره حلال هم داره حلال خیلی خلاله حلال کسیست که ارده فروشی میکنی ارده درست میکنه کارشونه جلال هم داره اون کسی که کارش پوسته جل پوسته پوسته پوست میفروشه اینا در زبطش هم خیلی نزدیک هم همه این سفر شوق کن شما یه ما و جلال و و ایلا اینا مقلدن به تعبیب ایشان اینا جزو علمان که نیستن زبط که ندارن سقه و جلیب و و ملا و فقیق و که نیستن این مرازش مقلد مقلده است از مقلد یک جواب میده بعد از این که تموم شد میرسه به فتحیه از فتحیه همون جواب دیروز رو میده که دیروز که ما روابط فطری رو رغول میکنیم با دو شرط یک اینکه سره باشن دو اینکه ممایین رو به نباشه انفراد نداشته باشه که یک ویژگی خصوصی هم راجب این مطلب اثر کرد باز بعدش متحرز قلاق شده بعدش هم متحرز مجبره و مشبهه شده من این رو میخوام بگم معلوم میشه در نظر مرحوم شیخ توصی اینها نکات شهر رو میکرده من بخواب یک نکته رو بگم اونی که بعدها در ذهن آیان آمده از زمان محققه ببن تو ذهنشون این آمده که شیخ گفته از حاب مذاهر خاصده حدیثشون رو قبول میکنه چون سفر پرشتنه اما این نگفته شیخ اینجا این کار نگرده اول محلجه رو گفته بعد فتحیه و غاقفیه رو گفته اینجا این بخش رو گفته بعد غلاف رو داره مثلا و اما ما رواه ها غلاف من ها مخلون علیقی روایت و متهمون فی وزر احادیس فلا تجوز و عمل رو به روایت اذن فرد اینجا بینید او انفراد هست و اذن بخش اذن بخش اذن بخش روایت روایت رو بعد استعاد جاز داره و یکون دار اصلا ما روایت رو یعنی به اسطلاح روایت قالی رو قبول میکنیم به عنوان اینکه که مقارن باشه معیل باشه نه که به عنوان و عمل مجبره اخی جواب پس این نیز یک اشکال اساسی به آهایانی که هست این است که این اختیار کردن مرحوم در کل مذاهب فاصله یک کلمه گفته چون سه غازم نه این کجا بود این بحثی بود که مرحوم شیخ درباره حجیت خبر واحد داشت من به مناسبتی حالا نمیخازم وارد این بحث میشم اینجا داره در صفحه 137 یک مناسبتی میده که مثلا شیعه با اینکه اختلاف در روایت باشه مثلا دین روال عمل کرده و اگر کسی به یک صورت عمل نکرد و تفسیری نکرد شیخ یه مناسبت متعرضه این میشه بقید ذکر تو ماور از انهام علیه همسلام منر احادیث المختلفه علتی تختص فقه که من اگه یارتون باشه دو سی روز پیش گفتن می کاش کوب یکیس به روات متعارضه رو بیاره در فقه و کلام و تلزه کلام و حقائد و قیامت و برزخ و اخلاق و در جمعه اشون ها اونچه که از روات احرابه متعارض فی کتابی المعروف بالاستفسار و فی کتاب تحضیب الاحکام امدش اینه ایشون میگه ذکر زکرت و ما وردانه هم ما یزید و علا خمسطه آلاف حدیث پنج هزار حدیث اونجا آوردن که اینا مختلفون هم فیه از که هم از معاصرین ما از سنی ها خضره همونده این عبارت شیخ آوردن برای کسرت تعارض و ذکر و فی اکثرها اختلاف تارفه فل عمل به هم اینه حساب و سال این همه کثیری ای ها چین کرده اینو خوب آدم در ذیل فواید چون روزا داریم بحث حساب و سالی می‌کنی که این خود شیخیه که شما يا در این حرف میزنه و ذکر تو فی اکثر حال اختلاف طایفه فعل عمل و دانکه اشهر و منهن با، البته خود من چون تعبدی نیستم انصافا این عبارات شیخ سنگین می‌ذاره خوب نبود شیخ این مطلب رو انصافاً انصافا به بین الله این دو سه سطر اگر عبارت شیعه در اده هست میکرد خیلی بهتر بود. ایشون میگه خیلی واضحه که اصحاب ما اینقدر اختلاف دارن. حتی لاله لا، الهی لا، لا. میگم انصافا با جلالات پیش اینو من امروز خوندم که مثلا چون بعضی وقت اهل سنت نقد کردن کتاب اصول مذهب ایمانی، راسته واقعا راسته واقع راست و واقعا هم خوب نبوده. انصافا انصافا ظلم هست این چون شیعه رجع نزد چون حتی انکل لو تعمل تختلاف هم فیهاد الاحکام و جد تبو که این اختلافشون یزید و علا اختلاف عبی حنیفه و شافی به ماله از اختلاف اولا که عجیبی انصافا این تحویر خیلی تونده رضوان الله تعالی علیه هیچ مناسب نبود این تحویر رو میگم تو اول میشون نمیشته خود منوشه نمشته اشتارتند شیخ ابو عبد الله معنی شیخ ممکن نه اینکه اشعری فلان این فلان از اسکی سید محترم در عالم این آقا یه بعد از اینکه شیه اون که اصلا گفت چون ما گفتیم مذاهب اهل سنت باطله چون مثلا شافیه یه چیز میگه هنفی چیز میگه میگه حالا ما از امام واحد از نه تا امامه. خب این عبارت خیلی عجیبه شیخ در این تا لو عمل اختلاف اون فیاده اهدا و ج اون یزی و اختلاف بیحنیفه و شافه ای و, و مال ازتیشونحلفش این بوده و وجه تمام مح حاضل اختلااف ع این لم یفتن اه من هم مات است یعنی با اینکه اختلاف در این منشه نمیشه که تو به اصلاح میدی تو خودی از تو خودی تو با من از تو مخالفی همدیگه رو طرح نمیکردن و نمی انتهه الى تولیدیهی و تفسیقیهی و برایت من مخالفتی یا م... بله ولی بل برایت من مخالقتی شد فلو را انر عمل و حادر اخوار کان جایزن لما جازو داره بقید میتونم این مطلب رو عبیت این روز بین پرانتز همینجی رو خوندم و این که بگم چه این مطلبی هم در کلام شیخ آمده و انصافن هم درست نیست یعنی حقا یقان انصافن ما اثبات کردیم یعنی این احادیثی رو که ایشون تعارض می‌دونن، معظمش اصلا تعارض ندارن. یا تخطی شده یا مشکلات دیگه پیدا شده که حالا چه این هم برای این مطلبی که چیست؟ هر ایشون یک مطلبی رو داره، مفهومشه مبناشون رو توضیح میدن و در راه توضیح مبنا مطالب متفرقان دارن. یه مطلبی دیگه من پرانتز دوم یه پرانتز باز کردیم بقول بعضی اعتراض در استفاده بشه مطلب دومی رو هم پرانتز دوم در صفحه 141 من که این عبارت رو مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب داره تو رسائل ما و می مایاদুল لایزان علی صحت ما ذهبنا علی ان وجدنا طائفه میزه الرجال ناقله لا حاضر اكو طایفه ام نه رجال نمیشتن نر خب اینو رجال باید معنیش این باشه کی صحت کی سنده این عبارت هم سا و سایل نقل نکرد اگه این بازه نقل کرده اینقدر به اصولین همه نمیکن و وسقط استقاط من هم و ضعف از زعفا راسته البته این مطلب مرمومی شیخ هم خیلی درستی شو انصافا اون مقداری که ما الان خود شیخ نوشته و قبلش شیخ داریم خیلی توصیق و تضعیف نداره همین الان تو بحث اصول ارز کردیم توصیات تضییفی که ما مجموعه از روایات دارید توی اباضیولوژی آورده‌ایم با اون چیزی که در صحیح احماس در حدیث ما شد 20 درصد مثلا ایناش من نمیخوام الان بگم حالا ایشون یکی از شواهد رو این گرفتن که خبر با این شرایط باشه بعد این جور داره و سن نفوشی ذالکل کتب در رجال و سن و رجال من جملته ما روه من اتصانیفی فهارسه من تمام این عبای خودم برای این. راست اینم درسته. مثلا گفتن کتاب روايات ایشون قابل قبوله، جز روایاتی که فلان و فلان و فلان و فلان در فرندشه. استثناء کردن، هر تا توی خود اجازه و تو خود فهرست استثناء کردن. رستس نو من بله من جملته مارو فی اتسفید تسبنات تسانیفی فهرسته هم حتی حدیثن و و این یکی از آن که ره دیدن نداره فی اسنادی و لغت آفهو در واسی این اون دوام که خوندیم برای تکمیل کلام بود اما این مطلبیشون وسوسن نوع رجال من جمله ما راو و به نت تسانیفی فهرسته این مطلبیشان درسته فقط یک نکته فنی داره که اگر این کتاب در اختیارتون بود آد نمیفهمیش بی نیست من همیشه نه کردم همین کتاب نوادرال حکمه استثناء کن بیستوی یک بیستو نقر ازش استثناء کردن الا مکان افیان روان فلان فلان ما در اونجا شرح اون عبارت رو انز کردیم ما باشیم اون عبارت استثناء فهرستیه استثناءی که شده فهرستی لکن ما هم وقتم گفتیم شیخ ازش استثناء رو جالی فهمده. این خیلی کار رو عرض میکنه. شیخ از اون استثناء اینجا معید همون مطلب اون مطلب ما خودمون گفته بودیم این عباراتی نبودن ما این عبارت معید اون مطلب این عبارت شیخ معید این است که ایشون استثناء رو رجالی میده هرچند ما کرارن عارفين شیخ چون طرح کرد حجت خبر و تعبدن خارینه‌ای خیلی مطالب جدید داره چون بقدمای ازها اول کرد یکیشم همینیه اون استثناء در اونجا اون استثناء فهرستیه لیکن این هم گفتن من ما احتمال میدادیم که شیخ ازش رجالی فهمیده استثنای رجالی و آقای هم رجالی فهمیدن دیگه زیادی و ازها رجالی مثل شیخ اما انصافاً استثناء فهرستیه این که اگه بخواهم شرف از بحث امروز خارج میشن. این عبارت ایشان معیده همون فهمید که تا محارب تالا باشد روشن شد تا اینجا پس ایشون مبنا شده در وجیهت گفتن بحث فهم شد بعد از اون بحث فسقی دارن در ذکر قرائمی که تا دلالا سه حت اخبار آها. آیونی که در سعبتش میارن در بحث وسائل بیست و دیه قرینه مرحوم صاحب وسائل گفتد از کن خیلیش از شهر ایشون قرائم رو میاره منها موافقت تو عدلت العرب بله همجویه که که میره منها انیکونت خبر مطابقه نسل کتاب منها انیکونت خبر م... الاخرین هم قرائنی که تو واسه خوندیم ادهیش ایشون دقیق کردیم از اون بحث حجیت کاره شدن ادهی رو در اینجا آوردن بعد وارد بحث تاروز میشن صفحه 147 از کردن کراره و مراره چون شقائل به حجیت تعبودی خبر تاروز رو مثل میکنه اما یکی کسی قائل به حجیت تعبدی نبوده تا تاارض معنا نداره این من توضیح چند بار عرض کردم بحث تعارض فرع حجیت تعبدی است چرا چون حجیت تعبدی میگه این خبر دارای یک ملاکی است حجت این خبر هم داره یک ملاکی است مثلا آقای میگه این خبر راوی قصد حجت این خران راوی سغرز حجت ما هم تعارض اما کسانی که قائل به حجیت اوغلای هستند فلسفه سو... بنده یا کسانی که قالب وجده خبر نیستن اونا اصلا معیار نیمیدن میگن باید شواهد تو این خبر جنبش تا بگیم خود جسد. پس اگر تا آرز داشته باشه شباهد جمع نشده اون اول باید تا حل بکنه تا شواهد جمع بشه لذا پیش اونها تا معنا نداره لغوه بیهوده از تا آرز نه اینکه که لغوه تصور نیسته موضوعی نداره بلزا به مبانی مثل معاصن تعارض معنا نداره چون نمیشه وجود به دو طرف پیدا بشه باید شواهد جمع بکنه وقتی معارض داره باید یک شکلی معارض معارضه حل بکن تا وجود به یک طرف پیدا بشه کردیم کردی و لزا اگر مباحثی مثل تعارض رو استاد مرحوم شیخه طوسی که سید مرتضی باشه نه‌امورده اصلا سید اونزا که به ذریعه بحث تعارضش مثلا 4 صفحه نشته اختلاف کنه در تاروز چون ما هم قاعده بحجیزه خبر نیستیم که جای تاروز دارم دو تا کلمه میشون بحث تاروز هم اول حاضرش به هم پیچیده حالا آن ما یک جلد دیگه جل کتاب دو تاروز دیرید شیخشون قاعده بحجیزه این پس دقت چون چون قاعده بحجیف شد دنبال تاروز رفته ایشون داره فعند مل اخبار از صفحه 147 از اینجا بحث تاروز رو میکنه. اون وقت ایشون میگه که اگر یحتاج و یحتاج رو عمله به بعضها الا ترجیحه و ترجیح یکون و برشا اگر چند بار یاد مبارکتون باشه من ارز کردم مثل ترجیح تقریبا بعد از علامه بعد از قرنه هشتون در شیعه دیگه مفرح میشه مخصوصا ترجیح به روایتون ما رو نهن زده خب شما شاید اینجا شیخ ترجیحه داره شیخ ترجیحه داره اما این ترجیح بیشتر ترجیح اغلا اصلی اسم روات عمر بن حنظله نمیاره ترتیب تعبد نمیاره مثلا میگه فئ ما علیقوم احد بخوی موافقا ولی آخر مخالفا توی روایت عمر بن اول اصلا شهرت میگه دو حدیث مخالفه میگه خود شماش در بیارید من وقتی عرض کردم که ایشون دنبال ترجیح نبودن خودما مراد من اینه اولا همین ترجیحاتی که شیخ در اینجا آورده توی کتاب ترجیح استرسال به کار نبرده منعکس در تقیه ایشان نیست اون در حدیثی ایشان منعکسه از جمع ما همکنی اصلا ترجیح نمیده ایشون و هر حال ایشون ادهی ای از ترجیحات رو ذکر میکنه که حالا آن مراجعه کنم من چون نمیخوام وارد این بحث بشن در زیل در زیل این بحث تا آرز داره و اما الادالت المراعات و فی ترجیح احد الخبرین خوب دقیقه بکنیم اینجا ادالت رو به عنوان مرجح اوبرده به نظرم نیاد مرومه محقق دقت نکردن ایشون آخه ادالت صرف مغزم و حجیفه چون خبر عدل حجفه. این مغزم و حجیف ایشون ادالت رو مرجح اوبرده دقت کرده و اما لئی ادالت از ادالت المراواتو فی ترجیع اهدل خبرن ان یکون الرّاوي مؤتمردم این ادالت مراجعه ن ادالت مقزمه جیات. مصعب سران، سگاتن فی دینه، متهرب جنن نرکز کدید درسیش. قیا متهمن فی ما لا یعنی. بعد گفم، فرما این کار مخالفم فی اکبر، المذهب. خوب دقت کنی. نه نه اونجا نه او جم مغابم خوندی. مغابم سه تین بود فا اما این آن تو من المذهب. فهور ان خبر الواحد اگر وارده. من طریق اصحابنا القائلین بالامام طریق و کان ذلك مروی عن النبي اولا در از اصحابمون باشه منتهی بشه در رسول الله و واحد بنویم و کان من ملا یت عنفی و یکون صدیقاً فی نقله و لن تكن هنا اون تدل علا صحت ما تضمنه الخبر شای غینه باشه تابع ردنه بله وقت بله, بله. جازن عمل رو به و از یه ادالت روش میکنم بخلی چی شد مشکل کجا شد این که مرغوم محقق میگه محقق حیلی در معتلا رو خیلی میگه فی مواز امریک کتبه این خلص شد بین بحث خوجیه با بحث تارال این دو روزه که من برای شما عبارفی میخوام شعار خلص روی کنم حتی مرغوم آی توستری هم کامل نه آی خویی که آی هم ناوزه بردن ما عبارت رو از اول کامل آوردیم که معلوم بشه که شیخ چی میخواد بگه، این روشن بشه حرف شیخ چیه پس ایشون ادالت رو تو مرجحات آورد به پس کنید و امل عدالت و و فی ترجیح احد الخبر این آخر ظاهرا مرحومه محبه همه رو یک نباه گرفته بله و از این فهم ما ادعا کن مخالف هنگفیلی اتفاق دویدی لحاظ لرزه مذهب دقت کنیم یک مخالف اصل مذهب یعنی شنی باشه این در صفحه ی 109 در صفحه ی 150 و اما ادعا کن رابی منفرگشیه مثل فکاهیه و لاقفه و نابوسیه این صفحه ی 150 سه صفحه ساد و و اما ما تردیه الغلاد و المتهمون و المزعفون و غیرها اولا دقیق کردید پس آمده مرحوم شیخ توسی و این نکته میشه صفحه ساد و پنجاوی و اما منکان مختن فی بعض الافعال و فاسقا به افعال الجواره و کان سه قسمتی روایتی متحر زنفی ها بعد ایشون آمده بعد از اینها و اداکان احضر راویین یعنی به خبر بلغزه و بالا آخر به معنا راه دیگه ببینید این سر اینه که مرحومه صاحب معتبر مرحومه همه رو یک نباه فهمیده فهم اینجور فهمیده که شیخ گفته اگر مخالفین ما حدیث گفتن سقه بود قبول میکنی روشا شد اما الان من برای شما خود این دقیقه ها این مطلب شیخ شیخ داره بغداد رو برای شما انعکاس میده این چقدر اصحاب ما دقیق بودن انصافاً خیلی زحمت کشیدن آنان دستبندی کردن یک اگر سنی نقل بکنه دو اگر فتحی نقل بکنه سه اگر مثلا قلات نقل بکنه شهار اگر فسقه نقل بکنه شراپور بوده نقل بکنه خب اگر مراد اون بود که مرحومه محقق از این عبارت اینجور فهمید. با در تمام اینو اگر سقف قبول می‌کنه، این چجوریه؟ چی شد که چه شد و چون مرحوم محقق بسیار بزرگواره ما اون قبول داریم. بعدیا که اومدن همون عبارت محقق تکرار کرد. خوندیم براش اون دیگه عبارت ما. من توی این بحث که داشتون بچر شد. چهار تا کتاب به اثر رجالی رو کامل داشتون خوندیم که هر چی گفته باشه دیگه گفت. خوندید که تمام اعتماد هم رو عبارت محقق بود پس معلوم شد یه بحث در اصل حجید خبره باچه در اونجا در اصل حجید خبره مغلده اوبرده بود مجبره و مشبهه اوبرده بود و فکری و واقفیه تو اون بحث و مغلده یه بحث تو مقام ترجیهه که ما موارد از سونی هم داریم، اشیام داریم، از واقعی هم داریم، از شیعر داریم، از فنیه داریم، اش از... این بحث ترجیحه. در چند صفحه فاصله است؟ به همین کتاب؟ بله 15 صفحه به اینکه س... این صفحات خیلی کوچیکه نشون حاشیه. در چاپه عادی ممکن مثلا دو صفحه فاصله بوده، سه صفحه فاصله فاسد بوده. فاصله کمه. من مو محقق یا حالا نمی‌فهمم چی شده، ممکن نمی‌فهمم. یا ایشون همینطور که من هر سرگیه ها تو موشه نواره گوشت بکنین مرحوم محقق این مطلب رو استظهار کرده از موازه امن کتابه استظهار محققه یعنی میگه همه اینا رو به هم بریدیم میفهمیم این بساقت. نکته بساقته دقل کرده و اولا اصلا شیخ هم که داره این عباده اصلا نداره این نل امامیه مجمد محققه میگه وقت سر رهش شیخ پی موازه امن دان علامیه مجموعه تن علل عمل به ما رواه و سکونی و عمار رو من ماصله و استفاد اصلا این رو نداره اصلا شیخ در اون دو جا سنی‌ها رو از ها جدا کرده سنی رو اصلا این جدا کرده کی سوره ها که حجیتو تقدیر که تعارض حجیت حوزه دیگه صلاحه منجهر است یعنی تو بعد تعارض فرق بر حجیت خب حجیتو اگر تابع وثاقت بدونه خب به چرا به این راه میخواد حل بکنه از خب چه چه نمیگه؟ نه ببینید ملتفتن. چرا بیا دل یک جایی یک نقطه عمل میکنه جای دیگه نکته دیگه عمل میکنه خب باید برگرد به هم ترجیحاتی که در خبر ثقه داشت، در خلال صحیحه داشت. ترجیحات اولیش اینا او عنوان با ترجیح. ببینید القران اصل صدل لا لا اصل بحث اصل قران. فعمل اخبار الا تعارض صفحه 144 منها ان یک خونه احد رو به خبره موافقه چه فهم میکنم؟ خبر پتایی و غیر پتایی من میگیم چه فهم من منها به اصطلافه امکان رو منها عددشون کدومشی بیشتر بعد اگر امکان عمل به هر دوره باید باشه ایشون در این تعارض ادهی از قرط این همه در همه جا بیارون چه فهم میکنم؟ چرا میادی اینا رو جدا میکنم؟ بعد هم دقت بکنید فا اما اضاکان مخالفن سل اعتقاد لأصل اصل وره با ما ادالک انا لأعمت علیه نظر فی ما یروی فا امکان هنک من طرق الموسوق به هم ما او، اگر در روایات شیعه زده و آمده وجب به خبره بازو را و لم یکن هنات؟ البته آقای خویی چون مثلا خبر سکونی رو سبه میدونن سعیدان خبر سکونی رو با خبر زران معارض می‌گیرن. یعنی حتی اون هم که کشیف گفته عمل بشه میکنن و اینلم یکن هنات ما یوجب و تراه خبره و یکون هنات ما یوافقه و جبل به و لم یکن من الفرقه المحبه خبرون یوافقه دالک و دایو خالفه یعنی منفرد خبر بیرن نداریم. ما ولا يعرف لهم قولون فی. حالا خبر ندارم این فتوا دارم یا نه میگه نه فتوا هم ندارم یعنی اتفاق فتوا هم بقیه. و مجب ایوان العمل به دقیق راهی کی ایشون اونجا به خبر سنی عمل میکنه خوب دقت کنید لما روی ان این نقطه اینه تعجب از مردم مرقوم گفته چون اینا سغه هستند خود شیخ ظاهره عبارت تعبده نه مساغر میگه ما خبر سنی رو قبول میکنیم چون امام صادق فرد رو قبول بکن لمارو یعنی صادر علیه السلام انه قال اذا نظرت بكم حادثت لا تجدون حكمها فی ما ربا و انا خنز و الی ما ربا و علی علیه السلام فعملو به این عبارت ایشون چینه اذاب نظر به کوم حادثه دون لات جون و حکم ما روا و عنا خیلی عجیبه این زمین روا ظاهرا به سنت میخوره خب و الا گفتیم ما روا توم یا مگر ربات بگیم روات عنا سن زرو الا ما روا و عنا علی فهم به خب مناسب بود مرحوم شیخ بهشون از ما اول کنیم میگه نه چون تعبده چون تعبد داریم امام صادق وله اجل ما قلناه عملت تاقفه به ما رواه حفظ ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و, و نوه ابن دراجیشون شیه و سکونی و غیرهم من الامن امتنا علیه مسلام فیما لمیون که روح جایی که شیه اونو منکر نیزن حدیث برخلافش ندارن ولم یکن اندهان خلاف این اینم چیز قریبی که در اینجاست اینه هم شیخ صدرن میگه هم زیدان خب از اون اونورا روایت شکونی میگه اجازه لا تجوزون حکما فی ما رب و انا رب و اننا. الان کتاب سکونی اینجوریه انجبه عربیان علی هم کجا بار لا ما رب اینو من نمیفهم واقعا فضا نمیاد اجازه طرف بگم حادثه تو لا, تجدو لا تجدون و تجدون ها فی مارب و اننا فنزو الامارب و انعلیه این واقعا اینا که مارب و انه و بعدم از کردم کرارن این حدیث فیلم در یک مصدری موجود نیست ما باشیم و این افارم مرحوم شیخ سر عملش به دوازه سکونی تعبد میدونه یعنی امام صادق هم پرنده. نه به ساقر ولذا بعدیشون میگه و اذا کانن راوی منطرق شیه مثل فتحیت ولو آقفت و ناوسیه و غیره, غیره. نوزر سیمایره ببینید فینکان هنها قرین از اون تازد و خبران آخر من جهت موسوغ بی... موسوغونه به هم موسوغینه به تربیشون به هم و عمل و به و امکان هنات خبر آخر یو من طریق الموسوقی و جبتراه و مختصو به روایته اینجا باید کردیم چیزی رو که فقط فتحیه ها نهاره کردن ما نهاره نکردیم قبول نکنیم وله عملو به ما رواه و سقه اینجا موردش از سقه نشیه و امکان ما رواه لیس هناک ما یخالفوا و لا یعرفنا طائفه علی عمل و به خلافه واجب ايضا علی عمل به خوب دقت کنید مثل اموال سنیا واجب ايضا علی عمل به اذا کان متحرجا فی روايته موثقا ام امانته ام ام ام خوب دقت کردی خیلی عجیبه این موردش نشه این مورد غضیه لیکن در اونجور میگه لما بیان سادر به اینجور میگه اداکانه متحروجن بیرواته موسوغم بی امانته و امکانه مختلفی مقت... اصله اعتقال ولعجد ما قلناه عملت طائفه مرحوم آیه محبه هر دور یکی سینخ گرفته سنی و فتنی رو یکی گرفته تحروجه چیم جنفت متحروج دروح نگیم متحروجن بیرواتی موسوغم بی امانته و اجل ما قلناه عملت تایفه و اخبار فتحیه مثل عبدالله نبکر و غیره و اخبار واقفه مثل سماعه و علی بن نبی حمزه و عثمان بن ایسا و من بعد و حالا ما روا و, و بنو فضال بنو فضال فتحیه هست و بنو سماعه و تاتریه اینا واقعی هست و غیره هم فی مالم یکن انده هم فیه خلافه این فقط دیگه کلمه کده فی مالم یکن انده هم و اما ما تربیه القلات و المتهمون و المزعفون و غیره ها قلات فما یختص القلات به ببینید فی امکان من منعور فلا هم حال و استقامتن و حال قلوبه امره به في حال استقامه و طور که ما في فی حال فیحال خطف پس خیلی واضح شد که مرهوم داره که میکنه وضع عمل از خواب رو و عمل از خواب به دقت بین این موارد فرق گذاشه متاسفانه بعدیات ها... این آخری حقایت دیگه میخوام بخونم متاسفانه بعدیات که آمدن خیال کردن مرحوم شیخ نظر مبارکشون اینه که هرچی مخالب در اعتقاد هست قلوب هست خاصق هست فاسد هست نمیدونم سنی هست نمیدونم واقعی است. اینها را طائفه ادعای ائمه ان امامی مجمع چون طائفه به اونها عمل کرده به اون به عمل کرده چون موثقن چون سران کرد؟ چون سران با عمل کرده پس روشن شد که انصافا این مطلب قابل قبول نیست دو تا نکته در اینجا قابل تحمل دقیقه یک نکته اینه که عبران شیخ نفهمید رو به کل اینها چون سبب عمل بکنی این همین نیست که مرحوم محقق ادله الصراعه استظهار هستند نکته دوم راجع به سکونی در به اصطلاح راجع به خصوص سکونی عنوان ماین انفراد رو شیخ به کار نبرد مایه اختص به راجع رو به کار تو اون بخش اول که بخش حجیبیت بود حجیبیت خبرد عنوان مختص تو به روایت رو توی واقفی و فتحیه بکار بود در اون بحث اول در بحث دوم هم که بحث تا بود راجع به واقفیه باز با فی مختص اونی که اختصاصا خود واقفی ها نرکردن قیبتون نکردن، عمل نمی کنه اونجا هم انفراد اونها رو اونجا مفرح کرد اما راجع به خود سک آمه روالت آمه و سکونی جهی که اسم سکونی رو برده اصلا بحث انفراد رو مفرح نکرد این هم یک نکته خیلی زلیفه همین نقطه اینه که چون احتمال داره انسال محقق غیر از عبارت صدوق شاید از عبارت شیخ توسی باز این فهمیدن اگر صحکومی منفرد باشه عمل نه که تصویی داره لافتی قطعا صدوق قطعا شیخ توسیه طبقتا یک طبقه یعنی صدوق در طبقه مشارق مشارق شیخ توسیه نه استاد و قدشد قبل از شیخ به رفتارشم قبل از دلایل شهادتش باورم نشد الان دقیقاً همین شما از می‌کنه این تعبیر که مایر فرل به حثت و نی لاعمله این تو عبارتش نیست خدایی دقت بکنید یک بار تو بحث وحیات رو تو فتاوی واقعی مختصو به روایته یعنی یعنی فرل اونجا بود تو بحث طارزم با فتحیه بود همون تو بحث تا که سکونی رو اوبود سکونی رو تو بحث موجه هم سکونی رو توی بحث تا آرز رو بوده. خیلی نزدیک به معالجه نزدیک. توی سکونی هم نداره ما یخطر صبح روایته توی سکونی اینه داره که یه اصحاب ما روایت خلاف روایتش نداشت باشن دو اصحاب ما فتوا برخلاف روایتش هست یعنی تعدیوشه اینه و لذا عرض کردی مثل محومه آیتوستری میخواید بگی این معنی کلام شیخ این کلام شیخ که اصحار ما روایت بر خلافش داشته باشن فتوا بر خلافشن باشه معناش اینه که یعنی سکونی به نفده معناش یعنی فرد. پس این انفراد رو شیخ داره تو فتحیه داره در دو جا هم داره فکر نمیکنم شیخ حواسش پرد بودیم مخلق رو همینطوری ارده باشید از اینکه در دو جا بحث فتحیه رو هم تو بحث حجیه هم تو بحث تا وقتی به فتحیه رسیده واقعیه رسیده گفته مختص تو به روایته اما تو سکونی و نوهرد در راج و یاسب نکلوب مختص تو به روایته رو نداره عبارتی دو که شیخ داره اینه که اصحاب ما برخلاف روایتش روایت نداشته باشن فتواه هم برخلاف روایتش نباشه اون دقت قطعه این نه اینکه ینفر لا ینفر کسی که نهار یعنی شیخ با یک دقت پر... ما به نظرم که شیخ خیلی دقیق در اینجا انصافا عمل کرده و این سرش این بوده که واقعا در اون زمان اصحاب ما رو روایات خیلی کار کرده بودن روی ها کار شده بود همون کاری که من میگم میشه فهرستی واقعا اصحاب ما کار فهرستی کرده بودن متأسفانه چون بعد از معاصر بیشتر کارها رجالی شد عبارت محققم آورده عبارت شیخ رو تفسیر کرده لذا در بودن که شیخ، زهر فیر، سر ره فیر من واضع من کتبه که امامی مجمع است امام و امامی به سکونی و امار یکیش از سنیاتی بیگه از فتحی هست به و سکونی و امار که شیخ هم چیکاری؟ هیچ کاری اینجا نکرده حساب سنیات رو جدا کرده حساب فتحیات رو جدا کرده دردشه و من ماسل من نستخار یک واقعا میگم که بعد کردیم که بعد من همار لی ادالت ما سلامول ادارت ما نگارته ما تکی بعدتر کار رو کلمه من ما بعد به استقامت اینجوری ادارت ما اون که یه چیز فضاعت بیشتری که نقد داده که شیخ مثلا عمار یا اون سنی رو مثلا عادل میدونه این نیست نه نه این از نه پس دقت بفرمایید انصاف قضیه تو که مراحل کشوری متراوحه شدن چونشون ناقص بودن لباس ما مفصل ابازه کامل بودن انصافاً اون چه که راجع به سکونی الان ظاهر عبارت شیخه نه وساقتشه درست از مجموع عبارت در میاریم اما وساقت نیست با دو قیب قبول کرده دلیلشم تعبده لما رو بیرم علیه السلام اگر ما باشیم زاره عبارم بله به فتحیدی اینا که عمل کردن به خاطر وساقتی چه اینجور درسته؟ پس نه این به شیخ نصفت بدیم که ایشان توصیح کرده سکون رو چه؟ و اما این روایت هم الان نظر بسیار ضعیفه چون هیچ مستری نداره و تطویقش هم بر سکونی بسیار مشکله چون قلعاده مشکله من گردی که نستجیب و بالله نستجیب و بالله مثلا در ذهن علمای اون زمان این بوده که این خود دقیق میشون تا حالا نگفتن در بحث اصحاب امروز دار احتمال ولی میخوان ملتزم بشن نثیری رو بالله تو ذهن علمای اون زمان این بوده که این روایتی که سکونین یا عن جعفر در نهایت در کتاب علی بوده این سند رو شکونی قرار داده نظر اونها اینه نظر اصحاب ما که این روایت رو گفتن فی ما رواه عن علیه این از ما نیست در کتاب این رو بینث اضافه یک اتصال سندی درست کرده. ویلا اساساً خود کتاب علیه بوده. الان با خیلی ظاهره الان قبول در کلام شد. علیه یال فعلا یک اون روایتی که شیخ اورده ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. حجیه چنین روایتی تعبدن بینا بین الله روز قیامت بسیار مشکله. هیچ شاهدی در این روایت نداریم الان. عبارت دیگرشه عبارت نجاشی جای دیگه هیچ شاهدی برای این روایت نداری نمیشون او حجت بینا بین الله روزی. دو انتباقش با ظاهر روایت سکون می نیستازه نگر این روایت سکون چیز دیگه بوده انتباقش با روایت چون ادار لن تجدون فیمارا و انهای خب روایت انهای که صادق انعبی انعبی انهای که انهای که این هم انتجام نداره پس تا اینجا روشن شد تا این مقدار حالا بعد دنبال یختصو که معنی یختصوی یعنی انفرد چی میشوند حسن اینجا روشنگ که قبول کلمان کشه این نیست که محقق قدسالان نفسه برموده هفت قرن از خواب ما دنبال اون محقق رفت و اون واقعیت نزداره